سلام و سلام به شنونده های عزیز کانال هزار افسان. امیدوارم که حالتون خوب باشه با شما هستم با یه داستان دیگه داستان این قسمت هست شاهباس و دوست ها شاهباس عادت دا شبها در کوچه ها بازار بگرده تا به داد بیچاروان برسه می میبینه که سه نفر دارن به طرفی راهی میرن می دو به اونها میرسه میگه منو با خودتون میبرین؟ اونها قبول کردند و گفتند ما میخواییم خزانه شاه رو بدوزدیم. شعباز گفت من فقیرم اگه چیزی به من بدین سواب داره. دزدها ها گفتند ما هر کدوم یه چیزی بلدیم. تو چی بلدی؟ شعباز گفت شما چی بلدین؟ یکی از دوست گفت من زبان سگو بلدم. یکی دیگه گفت من شب سیاه هر کسو که ببینم روزم اونو میتونم بشناسم. سوامی گفت من مشت به هر دیواری بزنم میدونم داخل اون خونه چیه. نوبت به شا رسید. گفت اگر کسی رو بخوام بکشن من ریشم تکون میدم تا اینکه اونو ولش کنن آزادش کنن. همگی به راه افتادن تا رسیدن به قصر پادشاه. اون که مشت میزد مشت زد و گفت که همینجا خزانه پادشاهه. خزانه رو در و قسمتی از جواهرات رو دادن به شاه عباس و گفتند تو دیگه برو و با ما نیا. در همون جا بود که یه سگی پارس میکنه. اون نفر که گفته بود زبون سگو میدونم گفت رفقا این سگ میگه شاه با شماست. اونو باور نکردن. گفتن شاه کجاست؟ شاه عباس که بر میگرده به قصرش، فورا به قلاماش دستور میده که برین تو فلان خونه سه نفر اونجا هستن و اونا رو دستگیر کنید و بیارید قلاما رفتن و اونا رو آوردن وقتی که نزدیک شدن شاه با اونها دوام کن و یه تشری میزنه سرشون که چه کاری بود که کردیم اون که گفته بود شب سیاه هر کس رو ببینم روز اونو میشناسم شاه عباس و و فورا گفت ما همه کردیم کار خیش را ای به قربانت به جنبان ریش را از این هفت شاه خندش میگیره و میگه خیلی خوب شما رو میبخشم جواهرات رو بیارید بعدش دیگه شما رو بخشیدم ولی باید هر کدوم مشغول کاری بشین و دیگه دوزی نکنید دوزی تو مملکت کار خوبی نیست اگه که کار داشته باشین دیگه دوزی نمی کنی. شاه دوستان رو هر کدومشون رو به یک کاری مشغول میکنه و اونها دیگه دست از دوزی می کشن خب دوستان عزیز این داستان رو شنیدید امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا داستان بعدی خدا نگهدار کانال تلگرامی هزار افسان داستان های صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقط می سلش مهران دوستی نقط نشانی وبلاگ ما ام s t مهران دوستی کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد عوستانی